بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العالمين و رب العالمین صلو اللہ علاوه کلید و رسول و آله الضیبین و فاهرین المعصومین و دعت جالمت معلوم اجمعین اللهم و فعل و جمعی المشترین يا رحمه رحمی هر سو که استاد بموناس حضرت محرما در حرفها حلق لحیر رو در این مقاسه محرمه اضافه فرمودن که چون خبز کتب و زلال بود لحیه لحیر همشون اضافه کردن مقالشون چون اهل بحث روزیشون خواسته بوده. خب این به بحثی هم هست که الان هم کلامه و است چون این مسئله ریش خراشی بودن ریش نبودن بودن هم یه مسئله اینجا که بعض از این و گروه ها در طول تاریخ اصلا به بو منتظ بودن نذاشتند یا بعد از ها نمیذاشتند بعد از فرهنگ بعد تمدن تو خود تمدن ایران و رو نوشتن که مجووس ریششون میترشه اما عکس های بسیار قدیم از اشوانیان شانیان نخواامشه ها هست که کاملاریش میذاشتن، حتی سربازها، عکسای که از آن هست همه ملکهی یک رمز رسمیشون بوده نه این که حالا, حالا ای گروههایی یه در طول تاریخ تمدن هایی بودن فرهنگ نژادهایی بودن نجاب بودن، مخصوصی بودن که ادهشون یک نحوه خاصی ریش یا مثلا نصف اونجلوشه چی میگن؟ قول اونجلوشه نیست که نصفشی یا دو سبسشی مثلا میتراشیدن و از عکس هایی که ما در طول تاریخ سرعنگ های مختلف مثلا از جنهای مختلف داریم کاملا این مطلب واضحه یعنی امر مبهمی نید در اینجا ولو در بعض اعبارات مثلا نصفتی به مجوز داده شده لیکن انصافش نقشه هایی که موجوده نشون نمیده که همیشه به این ترکیب بوده. و کدالک مسئ سویل در مقابل او این که بوده و گاهی هم یعنی اینکه از مشکلاتی که ما ارز کردیم قرارا بعض از احکام دینی ما متاسفانه بر اثر فرهنگ مختلف خواهی نخواهی تحت تحصیل قرار گرفته بخواهیم یا نخواهیم یه واقعیت رو با قبول بکنیم این هم هجاب ما اگر ای در کشوره عربی ایران مثلا مثل سوریه لبنان مثلا کشوره پاکستان. انصافت بین مسلمان ها اون اجرای عملی حجاب، اون تطریق عملیش یک نواست نبوده الان کاملا واضحه یعنی حیات های مختلفی دارن و شکره های مختلفی در این یه مقداری به خاطر هم یه دین رحمل دونه دین سحله سمه بوده دین هنیفیه بوده مقداری هم به خاطر به خاطر ها موثر بوده مثلا یه زمانی برید نیست در این مناطقی مثل همین های شام در خود همین حلب و اطراف حلب که الان هم همین طوره یه مقدار حالا یا مثلا نجابه کرد بودن یا شبیه کرد بودن یا آمیخته بوده از فرهنگ علوی و غیر علوی احتمالا مثلا شیعه های اونجا که الان هم از مناطق مثلا سبیلاشون دراز میکردن کردن مثل صوفیه قرص می احتمال داره که خود این کار رو می‌کرده و اینکه سنت نبوده سبيل رو دراز می‌کرده این در این قبیله تطریقه که معروف شده قبیله تخریه قبیله پیشور از تاجویون قصاده عربی خیلی معانی لطیفی داره و اضافه بنی کرده و ادبی خیلی معنای بالایی داره انصافا یعنی وزن بالایی داره در شعر های احمد نمونی اندلوسی اندرس انجلوس جزو اندولسی ساکن هم بودش دیگه ایشنا هم هست اما انصالانشون به این زیبایی قصیده کتریه ایشان نیست هم مرحومه مرحومه امین. امین هم مرحومه امین هم مرحومه امینی در, در شعره نام نامیشونو بردن و مثل مقدار متن قصیده کم و زیاد داره بسیار قصیده شیری نیست بسیار قصیده قشن نیست و از همش ممكن تری از آداس و خوالیدی که بین سنی و شیعه بوده میفه نقد میکنه این خیلی به لحاظ عهادی و فکری علاوه از اینکه به لحاظ شیعیه که بسیار بالایی است به لحاظ تاریخی و عوارض شیعه و مقابلش با عوارض اهل سنت بسیار تحلیلی به اصطلاح ماجرا نیرشیار بسیار خوبی است خیلی فکری لطیفه ما اصول و رسید تاثیریم که من پولام رومی بوده کوچه اوده استنش تاثیر اوده گویش از هست رو اونم می مثلا که پولامش کوبه نگهش نکشه از میوه ولی اش و جوش رو فرق پولام یک قصیده مفصلی سر به سر دختره خیلی زیبا است اما خانم جلو مضمونی رو چیز میکنه که اگر این سیده بزرگه ها قرآن من بر نکنه من سنیدیشم و دیگه مناسبت افکار سنید رو نحو میکنه چینین میگم چینین میکنم چینین میکنم وزده شیعه که مثلا شیعه ها این کاران رو میکنن من این کاران رو نمیکنم به این مناسبت حدود صد بیت تقریبا با کموزیادش اه... بله. از اولش این اردفت ترتیب سهر و اردفتت از بیبری سکر خیلی زیباست این صاحب لئن شریف عبد القران ابو مدر ان كه الجهود ولن يرد الالم يرد علي مملوكي كتر اون و من كلام شهر بل حب بعد مي من شنونشان دائم يوز دوستارم اون چي دون كنم تعون ان اختا ماويا چون تما اخسر صدر بدري ميشن جدي ميشن خب بولا خليك از احكامي رو که نرف میکنه و ابوم في وسط تاريخ و و ابو في وسط تاریخ سبیل هایی داره می پراشم <تصفيق> به قطع کردیم و اقوامو فیبست هسته به من اول سبیل این اقوامی که رد میشن مراد شیعه این شیعه که در حال هم بودن در اون زمان یکی هم با از همون بوده الان نیست به عکس چین چیزه در جمعه پشریه بعد از سروفیان به همیشه تمثل بودن که مثلا این دوزو آداب تصال شیعه بوده نیست این دوز الجزء چیزهایی که اشیعه است و ایشون که باش مخالفت می‌کردن تراشیدن از سبيل اینه که راجیس از سبیلشون می‌ترشه حالا این یک نوع فرهنگ اجتماعی بوده، رفیع فرهنگ دینی نداره، من خاصن نکته عرض بکنم این مسئله انصافش از تاریخ بشری چیزی نبوده که حالا در اسلام و خصوص اسلام باشه این بوده و اجمالاً هر به اصطلاح مطلقاً محاسنش رو میگذاشتن یهود محاسنش رو میگذاشتن اخصوصا این علمه های یهودی ها که چیه بسه ها خاماشون یک دوشه رسابی هم دارن خیلی از دوشه قبل از که اونا جز کسانی بودن که این کار رو انجام میدادن خود عرب بود وقت در اون زمان ساسانی ها شون ریش رو میتراشیدن رمزه عجم در حقیقت از کردم اکتاری که رمزه تاریخی بوداری رمز مثلا تراشید یا گذاشتن سوید باشه اون خود صحابه اینطور بوده یعنی یک واقعه همه به قبل از نیواز بحث پیش بشن. به حیثی که مثلا چون بعدم پیغمبر تحکیق کردیسیم رو باید که مسلمه یعنی انصافم تن رو زیاد داره بهترین که استحبابی هموجود بستیگر ها ریش ها رو گل بکنیم و هف و شواره یا احف و شواره که ایشلا جهات حدیثیشم عرض می این چون بوده از پیغمبر لذا اگر مثلا خود همیر المؤمنین با اینکه که در رواید دارد کوتاه هم بوده خیلی محاصن جالب توجهی داشت در رواید که تمدع و سدرهتن سینه میکرد، خیلی محاصن معلومی شو بلندی بوده اگر اینطور این تعبیر اگر راست درست باشه بر رواید دروغ هم اون وقت اگر کسی یه مساله بیست در جزهش نشد توضیحاتی رو ارز بکنم اگر کسی حتی کوتاه هم میکرده خیلی همچین مورد توجه بود حالا کارم روی به تراشیدن, تراشیدن خود کوتاه کردن هم جلب نظر میکرده استالغابه رو نگاه بفرماییم به کتابی اصحابه نرشه کنی یکی از خصاصون یک مساله رو سنگیم در این کتاب ها نمده نکسا باستان در این مساله رو من عرض بکنم. مثلا در اونجا در شرح حال عبدالله ابن مسعود صحابی معروف مثلا خیلی تعجب آور بود تعبیهشون نکام یسقی و لحیت نکیتن ریشش رو کوتاه میکرده هم کوتاه کردن مثلا به نظر صحابه خیلی تعجب آور بوده خیلی تعجب بوده که مثلا یه مزیتی که الانو تعجب مثلا یه علامت بارزه مميزه عبد الله بن مشعود این بوده که ریشش رو کوتاه میکرد، تعبیری که در استاد و دیگران داره کاریو سخیرا لهیته ان شاء الله یه روایت کنم از امام باخره که دیگه خدمت امام رسیدم حضرت خفصف لحیته اینم ان شاء چون نواقص خوبی به دیگران در اینجا این جای مسأله دوناردن من اشتباهی دارم می‌کنم البته اون روایت به خصوص چون ادعی تماثل کردن ادعی به روایت تماثل نکردن میخوام میگم چون ذکر آقایی مخوان قبله مراجعه کنن یه نصخهی داره حله به نهیت هم جه خففه ظاهرا تصیف باشه حالا من چون در اونجای باید توضیح اعرض بکنم و در این کتب نیامده من انشالله اونجایی مطالب رو اعرض خواهم کنم معلوم میشه که کوتاه کردن هم حالا ما شواهد داریم که کوتاه کردن هم محل کلام بوده اجازه نمیدادن این رواستش هم آقای خوبی هم آور اما حالا قبل از این بباید اون در اون بباید که ما داریم در کوتاه کردنه عنوان اخذه اخذنه لحوه اخذ با عنوان کوتاه کردن این بباید یعنی که معروف شده مثلا نسبت دادن که گفتن دیش دو طرف چه میشه پراشید وسطش نه میگن اما من الجانب این پراب این اصلا خودش اون بباید موردش اخذه نه موردش حرفه اصلا هر از اخذ اینشالا سوزی ا که اه... کلا سه مبنای علمی راجع به اخل وجود داشت نه حلق <تصدق> <تصدق> و اخز مناللهه می کتاه کردن می شوالا عرض میکنم به این خود اهل سنده سه مبنای وجود داشت یه مبنای جایز می سن که طالبان نگرش رو گنده میکنن. میگن باز بکر اونا اخلله ها حمله هم لبره کردن بر وجود یک مبنای شو می جایزه بلکه که در و قمضه مکروه این دو تا مبنا که در روایت ما هم آمده مبنای ثبت هم تفصیل بوده به خود اعنی سنت هم تفصیل این هم تو روایت ما آمده این مبنای ثبت هم تو روایت ما آمده و اون که اخذ از طرف این اشکال نداره اما از وسط نگیره طرفین کود نه حل این نه روایت هم که حل از طرف این نه. این جانب این اونم اخذ حالا اینشالا عرض می کنم. من یه فرحه اجمالی هرم عرضم برد میدرسیم به مسائل و روایات و تاریخ اون و شهر اون و عرض کردن نسبت به و هم در امام باقر داریم اون روایات در امام که خفت فرقه که به اونم تحکیب میکنه که چون امام مثلا محاسم و کتار بردن چون تا دید ازدواج گردم بخاطر ازدواج بخاطر این خانومی که از سیرون بخاطر مثلا این در یه نسخه از همون روایت داره حلقه لحیطه همون روایت وارده، یه نسخه داره و اما به لحاظ صحابه راجع به عبدالله این مسعود داره کان یوسف یه رو لحیطه که معلوم میشه که خود این مقلب هم درشون ترکیباور بوده که مثلا عبدالله این مسعود مثلا چرا این کار غیر غیرمتعاربی بین صحابه را انجام داده حالا این یک اجمال چون ارز کرد این مسئله هم به لحاظ تاریخ بشری ثابته داره به لحاظ سیریه عملی اهل بیت حالا ان شاء الله خواهد آمد مرحوم مجلسی در روزاطرین به این تماثُل کرده و درست در حد خود بیگمان برحنه به قطعاً مساله حلب لهدیه به استثنای روایات واحده که به نظر من شواهد کاملا وافیه چون هر خطا پس قرار عمله که هر ولو برکن واحده نگرد نشده این شواهد سراوان انا همینطوره ارض کردیم این مطلب یک مطلبی نبوده که حالا اختصاص به جهان اسلام داشته باشه در اون مطلب دیگه بوده و متاسفانه بر اثر گذشت زمان یه مقدار به خاطر فرهنگ های مختلف، مثل هجاب به لازم فرهنگ مختلف تحت تأثیر بعضی از مجتمعات قرار گرفت این مسئله که یک نمونه که من ارض کردن شیعیان اهل لب در زمان ابن مونیر ابن منیر عبدلوسی معروف بودن که اصلا سبیل میذاشتن اگر اصلا علامت شیعه شناسند در هلل داشتن سبیل بود اگر سبیل نداش هیچ شیعه است اگر نداش سنیه یعنی کار اینجا رسیده بود که قطعا زمان ما این نیست دیگر و نه زمان ما تو هللم این میشه روز به دیگه حالا این مسئله است که مسئله تاریخی و در اون بعدهای خاص خودش ان شاء الله نظر این مسئله در قضایی که مدل اول متعرض ادله شده و بعد هم اگر تعیید بزنیم ان شاء الله تعالی اما بلاغه ادله خب طبیعتاً اولاً دلیل در شریعت مقدس کتاب الله و آیاتی که متصدی احکام الهی شدن ما این مسئله یعنی هر اللهی نهی به عنوان ما آیه ای در قرآن صراحتاً نداریم دو تا آیه هست که که به اطلاقش مثلا یا عمومش یا مثلا سیاهش به اسطلاح مثلا شما ارز کردیم یک نحوه از چون ما مجموعه احکام شریعت رو به فریضه و سنت تفصیل میشه سنت که سنن نبی باشه به طور کلی به دو نحوه یک نحوه سنن پولیه است به نام کار بکنی یک نحوه سنن فعلیت این سنن فعلیه جدای از فرائز معنا نمی شده قولیه هم دیگه سر همونطور بوده مثلا نمی ماده پیغمبر یکی یکی سنن نماز رو بخونن ها وارد بود اقیم و سلا اقیم و سلا که شمس بعد می آدم پیغمبر عملا در خارج می خوندن یه نوع اندماد یه نوع امتزاج شدید بسیار شدید بین سنت و فریضه وجود داره اون وقتی ما میگیم سنت به این معنا مثلا اگر آمد فلی یغیروا الله این آیه اطلاق عموم پیدا کرد اطلاق داره که تغییر خلق الله وقتی در سیره عملی رسول الله مثلا این پیامبر اکرم محاسن وارشون گواشتند انباه مثلا این می اومد تکلیف ایجاد می‌کرد در سنت هست این تغییر خلق الله یعنی اگر صحبت این بوده که مثلا اطلاقی هست یا اطلاق حسابی اطلاع هست مثلا فرص که درباره ابراهیم که هنیف بوده خب پیغمبر اگر از دونه هنیفیه پنج چیزه پنج چیز ده چیزه دهتش از سره. ده دهتش هم در پاس مثلا در نیمه دو بدنه مثلا گذاشتن ریشه نتراشیدن ریشه تراشیدن سبیل ناکنکوتار کردنه ببینید این یه یعنی اون مندمج میشه با کتاب ولو نه به خوده و که مندمج میشه یعنی به هیچی که وقتی آیه خونده میشد با اون قرینه کلام پیغمبر این ازش حمیده میشد مراد اینه پس ما در اینجا الان هنر اساسی ما یکی آیاته یکی باید ببینیم آیا واقعا این آیات با اون زمینه های خارجی او بفت میکنیم با اون وقتی که پیغمبر داشتن سلوکی پیغمبر داشتن کلمه که پیغمبر افتران صلی اللہ وسلم و روشن شد جوری بود که از آیات این معنا به ذهنشون بیان که وقتی بندن حنیفن یعنی مثلا ریش نمی کرده یعنی موهاشو کوتاه میکرده ناخونشی مثلا توش بوده حنیف به ذهنیت یک مسلمان ها یا به خاطر سنت به مثلا سلمان مثلا ما کما پیغاماتی معنی چجوری هستن؟ ادوانی ما اینطور بود. ببینید که میامون نگاه می‌کردن فعل پیغمبر مثلا ناخن کوتاه کردن پیغمبر نور استعمال از نور پیغمبر اینها رو جزءن حنیفیت گرفتن که حنیفیت یک نوع پاکیزگی و یک نوع بهداشت عمومی در بدن بوده و این به این صورت بوده. اون پاکیزگی و بهداشت و اضافه و به اصطلاح حد بدن رو دادن هر چیزی رو جای خودش قرار دادن چون ایراداً بریم از امام باقر که هر چیزی خدا براش حدی قرار بده سر سفره نشسته فرمان این سحره یه ای حدی داره این یه ای حدی داره مثلا این قاشق هم یه حدی داره مثلا این نانخونه هم یه حدی داره هر چیزی یه حدی داره این ایراد در کشی و در یه مناسبتی این همینطوره اگر آمد پیغمبر اکرم فرمودن خلق الله اینه این وارد مثلا تغییر خلق الله چجوری در میاد این یک اجمال حالا برگردیم به تفصیل منجب. قبل از این رو وارد آی اجمال است دو تا آیه در این مورد ذکر شده که تمسک به اِطلاق این دو تا آیه, آیه مبارکه بوده برای ریش تراشیدن به اسلام بیش همین آیه قرآن عرض کردن این آیه در سوره مبارکه نساء تقریبا آواخر آیه 19 زايه 19 ملا اوللن ماهم شیطان خبر میده که من گمراهشون میکنم ول امنین نهو اینا را آرزو برشون قرار میدن چون که در یک گه دیگه یا در همین آیه اون من فکر میکنم شدم شده شده جایی باشه لا خودن من عبادی که نصیبان محفوظا یعنی من میام یه قسمت هایی از زندگی رو نصیب من خودنم نصیب خودم یعنی که نما در هر قسمت زندگی زندگیی فصل در همین کتابمونه نصف الهی است نصف شیطانی است در قضاکردن نصف ربانی است نصف شیطانی در کوشش نصف شیطانی است نصف ربانی اینجوری لعاقل نمی‌نامند نسبت محدوده این ظاهره ولی آموزن نه هم ولی آمنیان نه هم ولی آموزن نه هم من میام میاد و آمر و لیبت کنم آذان و آم خود بعد مثل قطعه بگم به لحاظ سوتی شبیه همه به لحاظ صوتی من اینا رو میگم اینا گوش حیوانها رو قطع میکنن این قطعه برداش قطع بوده بعدش هم شب بوده یک شکافی توش میدهدن یک تصوری بوده و اون تصور این بوده به طور کلی در امم سابقه در قبل از اسلام در ادیان سابقه مثل خود یهودیت اینا میآمدن خود کهنه یا خود مردم عادی یه تصرفاتی می‌کردند بیشتر کهنه و احبار و راهبان و ربانیون و بدون خودشون یا جادوگرها سحر ساهرها جادوگرها یا خود پادشاه ها میآمدن یک تصرفات شخصی میکردن یه عده از که در اصل حلال بوده حرام میکرد یا محدود میکردن یه چیزی مثل هما مثلا فکر یه مثالش مثلا یه پادشایی گفته اینجا همای من یعنی حریم من ما به لغت فارسی قرغگاه میگیم مثلا فرسی همین اصابت ایران سابه من. یه منطقه محدودی رو دورش علامه بسیاری که اینجا قرغگاه تر محل شکار مثلا شاهد کس دیگه هم این نحله رو شما در نظر بگیریم، این در جامعه ها بوده. اینی که در روایت آمده اللهم ما الله ما و رسوله این اشاره به همینه یعنی این هما حتی هر پادشاهی نیست این باید طبق زبابات شرعی در بیاد. الله و رسول حقی این هما رو دارن. خود یهود می آمدن یک چیزهایی رو برخوبشون حرام میکردن ولی ازا یکی از مبشرات که برای یهود مثل فیغمبر اسلام بود و یوهند رو لهم و تیبان. اینا بر خودشون یک مشکلاتی رو سردن یک ازلالی مثل اینکه انسان نگلانسای صفیحی بیاد در خودش کار برست بخونی در سفار خودش ببنده ولی که از اصافی که برای تیغمبر اکرم بود و یا با هم اصرا هم ولی اقلال لفیکانت علیه این نبی اکرم که خواهد آمد این زنجیرها رو خواهد شکن این کارهای باطلی که اینها قرار زن جاهلیت هم همینطور بود ت وقتی یک تعبیر قرآنی هست اون تعبیر قرآنی این است که شما هر ربانی و الهی نبود این شیطانیه مثلا از نظر ربانی خدا از همه چیز رو برای شما حلال کرده اما شما بیاین مثلا بگین این گوشتنده من حالا که دو سال اومشته سه سال پیش من شد دیگه حراما میشه نمیخوام یا حرام این میگن شیطانی این تعبیر قرآنی این رو میان شیطانی قرار میگن. این یوبت کنه اذان که در روایت هم در بلا من بحیرتن بلا ساهده اینا یک در جاهلیت داشتم از این که چون دو جور نرفت احتمال میدن اینو قرفشون هم واحد نبوده من احتمال دن مثلا اگه سال ناغهی ماده، یک شطر مادهی ناب ماده هستی اونقیه شد یک شطر مادهی مثلا 5 سال بذارد یکی اینه میگویدن گوشش سلاخ میکردن یا میب این چیز بود یا مهل شیکر تو سر راحت رو که در صاحبه بود صاحبه یعنی دیگه می گفتن نکوشید نکشید نخورید این دیگه خوردنی نیست این, این پس یو کن نا ازانل انعام یعنی یک بخش از حیوانات حیواناتو برخودشون خراب میکردن این الهی نیست حیوان جنگی دام بزاد 20 چیه چراستم داره بعضی از حیوان من ممکنی نمی‌شه ولی زندگی طولانی داری بچرجه بعضی از مرغه من درازیدم تا 10 شدم توخ میکنه الله که یه چیزی که نه 5 سال تو کار می من نمیخواد خوبی چی این تعبیر قرآنی هست که شما اگر کاری رو برخلاف صفات الهی کردید برخلاف اون راهی که خدا قرار داده این چیز شیطانی این ربانی نیست این رحمانی نیست این شیطانیه و ما خداوند متعال یک مقدار از اعمال شیطان رو در نهای ترسیل کرده در حقیقت اگر مردم آمدن این شطر ماده رو در یک مرحله مهنگ در خسون حرام کردن این در حقیقت است که مردم به ندای باطنی شیطانی و خودشون دادن که انما در وجدان انسان دو ندا هست یک ندای شیطانی یک ندای رحمانی تو اگر آمدی حرامش شدی، به اون ندای شیطانی جواب دادی این تعبیر ولا آمورن نه من همهش میگونی من بهشون میگم اون ندای بازی قرآن میگه اگر تو احساس میکنید چ چیزی هست این شیطانیه این رحمانی می نب این پنج سال بر من ضایی دیگه من نمیخورند سز در, در سال گذار دقت میکن. پس این ولا آممررا نه هم فری و گوش های حیوانات ف پایانگووش به این حیوانات رو میبرند یا گوش هایشون شب میکنن شکاف میدن؟ این یکی امر شیطانی یک امر این با همون تحریر دیگه قرآن هم می سازه لآخونا لا نمن هم نصیبا محروضا پسند که هم این حیوان دو نصیب داره تا قبل از زایمان پنج زایمان خوردن این نصیب الهی چه؟ بعد از پنگزایمان نمی خوردن ولی بود دیگه تا ببینه این نصیب شیطانی این نصیبی که شیطان گرفت اینه ولی آخونا نمن هم این است که بعد از پنج سال نمی تا خودش بمیره گوشتش هم هدر می خب چرا این کاری می کنیم پنجتون از گوشت رو استفاده بکنید نه اینکه که به زلگوشت رو هدر بشه از بین برد ولا نه نهو خودش اصولاً در قرآن این اعتقاض کلی هست که تکرار به عنوان این اشعار به یک نقطه باید باشه مثلا وره وانم آقران من منشه این فعن لله خمسا. اول لله ولرسول لازل قربان لام تکرار میشه ادعا میکنن که ادعا شده که تکرار لام مال من عزت لله ولرسولی ولرمومنی سه تا لام برده که انما عزت الهی و عزت رسول ازدت و عزت مومنی و میکنم مراتب عزت یک حقیقت واحده نیستن حتی الله و عطیب الرسول و قول الام ولزا شیعه فهمیده که اول باید ملحقه به رسول الله باشه، نکن وقتی و علی الام رو تکرار نکن نصد به رسول و الله تکرار شده اما نصد به علی الام نصد رسول تکرار نکرده. اشتاق و لذا همون مقام اسمتی که برای رسول هست برای علی الام داردن و لذا به علی الام و غیره معصوم اصلاح نکردن شیعه امام همفرانون در حدیث سهی نظر لکینا خاصه این فقط در ما اهل معصومه. که مساق ل عن حسنا این معلوم میشه که یه امر دیگه‌ایه ولا امورن نهو و ذو مرحله دقیقاً این ولا امورن نهو فلی وب تکن آن خودش معنای قطعه است بتکه باب تفعیل شه یوب تکون جمعشه بانون مشدده بانون شدیدالو میگن مشدده درست نیست چون درست میشه بخاطر اینکه عطفشون سنگ خفیف رو باشه با نون شدیده یا مشدده شده و فلیوبت کن آزان الانعام ایو قدت کن ول آمورن هم باز دو مرتبه آمورن هم به فرق. این نون راه قبل از نون چون سیقه متکلم مهده هست فلیو غیورن سیقه جمع فلیو غیورن خلقالله تغییر خلقالله داده بشین و این تعبیر ما در یک آیه دیگه هم داره خوب دقت بکنید که در باب توحیده صراحتن لا اله الا الله علیها لا تبديله خلق الله زالک دین الخین اینجا عنوان خلق الله اومده فلیغیروا من خلق الله به نظر من جوای دیگهما خلاق الله فرونی مازا خلق الذين من دونه یه موازیام آمده اما خوب دقت بکنید در بحث توحید صحبتی که شده تبدیل خلق الله در بحث شیطان خلی و غیران خلق الله تغییر خلق الله تغییر رسپیده یعنی در بحث توحید بحث این است که خداوند یوری مسائل رو خلق کرده اینقدر محکم و مستحکم خلق شده که هیچ جای دیگه‌ای یعنی نمیشه اگر گوشه انسان در این جاست، اینجا تو پیشونی آدم باشه، یا تو سینه آدم باشه. هر چیزی با شر شعر شال جهان چون خچشون خط و خال و عبروز که هر چیزی رو جای هیچ میخوز. اینقدر زیبا و درست شده قابل تبدیل نیست. تبدیل، صحبت تبدیل. یعنی نمیتونیم یه چیزی رو جای دیگری قرار بدیم. در شیطان که رسید سحवत تغییر نیست سحवत تغییره تغییر از ماده غیره یعنی غیر خراب دادن فقط تغیره دو مثلا گوشو برد عشان گوشش نشذاره میگن خفاشو هر چه ایسا درست کاری داشت چشم از داشت چون خفاش چشم از به چیز الکترونیکی به قول اون رادار الکتریکی به قول اون چون مطمئنا ضمان جهان رو پیدا می‌کنه حواس از ایسا نبود میگه کاری که بکنی اینجوری چشم نش این تو معنیش در اساس اونش اینه مثلا به هر حال و لا لا نه تغییر خلق دهن. نه تبدیل. یعنی خیر غرایش معلوم میشه یکی و خلق الله بوده، خلقه کلایی بوده،, خلقه بوده. خلقه دیگه. ده ده خلق الاقوامی بود خلق بر چون به لحاظ در لغزیدم و قطعه، خرد هم به معنای مصری داره یعنی خیلی بره هم معنی اسم مفعولی و معنی مخلوب. هر دو صلاحیت داره این این قرنیثی که نمیشه میشه خلق ب یعنی میشه خلق ب یعنی ساختن ایجاد کردن درست کردن میشه هم ب معنی ساخته شده هم ساختن هم ساخته هر دو رو در واقع حرف میگن به ناز لغتی به ناز این امکان داره این چه این آیه اجماله که میان تغییر خلق الله میاد. تمثب شده به این آیه مبارکه که هر چیزی که خداوند خلق کرده تغییر او تبدیل او تغییر، تبدیل او تغییر او جایز نیست مثلا خداوند برای مرگهاد روی شرار داده تبدیل او تغییر او جایز نیست به اصطلاح دیگه شده به اطلاق این آیه مبارکه خب این به نظر من وجهش گذبا شده اوزه ما برساریم قلت قلت ها جاریه منامشاتشی وارده دیگه که این مثلا فرصیم خلاف ظاهره اطلاق شاملش میشه اطلاق روشنی می، تخصیص اکثر لازم میه خیلی تا مویه سره میشه تراشید ناخونه میشه گره موهای دسته میشه تراشید موهای پارو میشه تراشید اگر منتظر بشین بیین که تمام اینها با به خیلقت اولیه شونه دست جهت پس مثلا حیواناتی میشه بکشیم موش بشیم بروب. بگیم هیکی چیه بشه درست نظرین خب خیلی خلاف ظاهره اگر مراده از خلق یعنی اون که در خارج هست حشرات هست پس بودن بعضیه که مثلا اگر با مثال اقربی بوده اقربه نمی کشتن اصلا یک کش کنم به در جوی دیگه به این پشه که پایدن مثلا پشنی توتا بوده که توتا نمیکشن. نگفته این در اطلاق واضحی هم بیرون بکنم این التزام به این معنا خیلی بعیده التزام به این معنا و بعد مثلا التزام بدیم که نه التزام به اسلام میگیم بگیم خراج ما خراج باقی هم باقی بمانم این واقعا تخصیص اکثر اصلا به ذهنیت افتدایی انسان هم نمیاد اصلا خیلی مستبعد به ذهنیات یک چیز معنای واسعی رو از تغییر خلق و حالا ما این ابتداعا از نکنم اما یه نوع تفسیر بیشتر در قصه متعرض ده در زر مفصلی مفسره که بعد یه آشهاشون نتیجه نهایی چهار میشین از این تغییر خلق چیه به ازبلا مرموم شهر در تبیان مرموم استال همشون اواز تبیان رو بردن در مصباح فقاه ما مبتیم اواز تبیان و نهور رو بعد خرار روزیم بعد دیمون رو دیگه نشاءالله این مطالبی که اینجا هست. در تبیان من به نظرم نیاد تبیان را هم محوم از درده بود و رهر سندن کردن که نوشتن چیه کتابی به نظرم بیخواه به سبت کتاب که از رهر سندن باشی ایشون اضافات شیعی فرموندن فقال ابن عباس و ربیع ابن انس این ربیع ابن عناس ای که یکی از تابعی از انس نه ه و از اجل که در میان اصحاب‌ها اششته نمی‌ذار چون من اما سونیا نشه کاری از و وای یفروت و پیارا جزء ما هم که اسمش این فالینوفیر سو فرات ما بین اسم ظاهری یکی دیگم که این زنه این مادرش من از محض اله دی ربیبل سنت از سون شی سونیا شی از شی گازر اما این یکی میشه یکیش مشروطه یکیش دو نفر هم داریم که اسلامشون همینجه نشته میشه اما اونا زن هم. اون زبطش رو اگر رویه کندی این اگر رو, محبه. اگر رو مثلا رو بیه بنت معرد این جزه زنهاست در همین کتب صحابه جزء جزه نساء صحابی ها یه رو دیگه هم داریم اونم زن. زنه این دو نفر زنه اشتباه نشه ولی چون نوشته, نوشته میشه. اون ربایه بنته زبت اون کلمه ربایه زبت این کلمه ربیه این به اصطلاح نرده و ربیه ابن انس ان انس انا هل اخصا ابن عباس رو از باشه از ابن عباس نقلیدگر تو لکار رو باید عرض میکنن این جا و کرهو این کرهو رو هم باید به معنی مثلا سنت گرفت کرهو ال اخصا فل این برای بعد این شما اشتایی توبیهی من این ساعتا من روز خیال هستم و به این ساعتی نمیستی که بله. کنم که نه درست موسیقی ارز کنم که خدمتون که به بلحظه... لحاظ من یک مثلی رو چند باره عرض کردم من چیزا به لحاظ لغری مشکلاتی داره اما اینا توی یاد حتی رقایت از زن انزبان و جاریه این یک کلاسی ادبی تجاریه یکی جمع کلمه اختصائه چون هم خطا در لغ... در رواض آمده نه آمده اختصا آمده که به اصلاح هم ثلثی مجرد آمده هم ثلثی معدود از باب افعال لکن میگن رث صحیحش خطا این به باب افعال نمی رسه خطا حیوان و خطا درسته. و لذا خسی گفته میشه منحیان نه مخصا مثلا گفتن از نظر لغوی زبس سهیش اخصای خصای هم در کتاب کلامت مقهان هم روایات هم محدثین هم مفسرین الا ماشاءالله زیاد کلمه اخصا آمد لكن در تفسیر درستی نیست. مثلا لایوتن و دم امره این مسلم هم سمولات اهل سنت اثیره مفعول این مشهور بر اینه اما ضبطش لا یطل و دمون مسلمه سیغه معلوم چند مورد بیگن ثابتاً هستند یالا من جاش اینجا نیست اینا میگن اشتباهات نیست که در عرف سنه جاری شده که از نظر ادبی اینها درست نیستند این رو هم بعد توضیح ارگونی کنم که این شای شد واضح بشارم امروز بینست اینه بعدیش و بیگه قال صوفیان به نظر صوفیان صوری باشه. شهرت اکرمه این علام ابن عباسه و به برده ابن عباس بوده و جزو علماء و بزرگان حدیث و فقر و تفسیر هم آرارش نه و می سنت اهلسانت در تفسیر زیاد آرا داره در حدیثی اونه خیلی هم مرده واقعا خب دارت المعاره مولاش ابن عباس شاگرد ابن عباس هم هم زیاد از ابن عباسی گرفته اکرمه و متاسفانه جزو خباره جامعه ما واقعا تحجیل میکنیم هم به این اعتباض دارن و مثلا شیعه گریت اشکالی در کلو شوشتی میگه این که چیتر به صحابه میگه این کافر میدونه یعنی عبی طالب و عثمان رو من ترجمه میکنم که کافر میدونه ازش هم که کنگه در اعتماد میخواهیم ایشونی دوزن خوار جهه کنه و ابو صالح و فیروازت مخراعن ابن عباس اینم نرم شده فلیوغیون دین الله و بهی قال ابراهیم ابراهیم نخری که از بزرگان تابعین کوفن و مجاهد که از بزرگان تابعین مخصوصا در تفسیر زیاد نظر داره و رویه ذالکه این ابی جعفر و ابی عبدالله که مراد الله اللهه این هم هنوزم برای من ابهام داره این هم خب نمیزون شد یک نقطهی پیدا در یا احل بیت احلم نمیزون از عجایب اینه که ما الان تو این زده این آیه مبارکه با این همه واقعا توالد دارشون فرصه بیش. هیچ روادی که از احله بید نداریم اینه جوز عجایب اینه جوز نه در کافی تحضیل استسال هیچ ر... جز این مورسنی که در تبیان شیخ سوسی آماده یعنی ما در کتاب حدیث یک دانه روایت هم داریم یک دانه بله یا خیلی عجبین واقعا مگر یا واقعا حض شده یا اهلوی اعتقاد بشن به ظاهرهایی آیه میشه تمثل کنین نقطهی باید یکی از اجایبه که اصلا توی این ظهیر آیه ما یک دان حدیث در کتاب حدیث از اعمه نداریم اما اینجا در کلیان به نحو مرسل و رومی ازاله که ان عبی جعبر و عبی عبدالله دو تا نحوی میکنه هم عبی جعبر و و هر در این رو باید به با ما نرسید منتظر. این یک نکته قال مجاهد که بله از مجاهد نرسیده که حالا من تفسیرش به اون سرعت همون شد ترده چون اکرمه گفت وقتی گفت که اکرمه گفت اینکه که این اخصایه اخصایه یعنی به اصطلاح اون وقتی که حیوان کچیکه مثلا خروس که کچیکه اون زیر قسمت مثلا تزاشت رو میگه یک با چاقو خیلی زریف میکنن اون قسمت مردیشو میارن بیرون بعدم بحثی میکنن در صوابق میکنن این دیگه به اصطلاح حالات خصوصیش از دل میره و شاغن میشه و گوشش میگن میگم خوشایندتر میشه بزرغا هم مخصوصا این کاری میکنن روز ها هم کمترد. اون بزرغ زیاد احسان میکنن از اکرمه نه اون که احسان ابن عباس احسان این معنا در مراد در اینجا اشرفه چون اجتماع ابن عباس بوده و از و این ساموگرم گفته بودن اما این تاریشش هم اینه در جنگی که انجام میدن در منطقه سیستان یا سجستان به اون زمان خیلی اسیر میگیرن حدود چهل هزار اثیر میگیرن در اخبار بلات خراسان مالاون سلامی آمده چهل هزار اسیر اثیر میگن که از این اصرا البته بعضیش کمتر بعضیشون بیشتر از بعدها ها جزو بزرگان عالم اسلام میشن یا بجایش اینجا میسه الله مطنون اعبادی میخواستن چون کتاب کمیابه متنش بد نیست در حدود چهار پنگ نفر پششیش نفر رو که از این حبید بودن برده بودن اینها بعد همهشون همه جزو بزرگان شدن یکیش اکرمه این اکرمه اصلش از منطقه سیستانه تقلید فهمونید؟ در اصلاح سجستان اون زمان چون اثیر گردم برده گرفت بودن بعد ابن عباد خرید بودش وانوان عبد کرده بل عبز. یعنی اکرمه توی قولی این نحال بعد مجاهد می گفته این نماها و تمیر بین الله از لدی فتران ناس علیه توی قولی فتران ناس علیه مثل ایشون مرمون شیخ سوسی در که بیان اینجور معروف کردن یک عبارتی از مجاهد نهار شده که با این که اکرمه اکرمه هستا نهار شد و ده مجاری گفتن الله خدا نازش نمی کنم چیه نعمیده و هم این که دین الله باشه قول قداده و حسن قداده هم از بزرگان مفسرین و مجوز تابعینه حسن هم حسن بصری است که جزء تابعینه سودی محمد بن مروان سودی ما سودی چند تا داریم این سودی وسط به اصطلاح تغییر معنا داد زههاک زه هم حتی جزء جواب دره و تواقیت حاکم در هم بود و در حاکم بود ز حاکم نقیص انصاریه و ابن زید ابن زید الان باید فکر فکرمش و آل قوم هول نش خالکوبی روم یزامی که علی حسن و زهاد ابراهیم ایزن ابراهیم نخعی و عبدالله مهم قالیبی و کل عبدالله مسعوده عبدالله و عبدالست مختمشی بن وصیفی الاضافه به مصاحبه با باریه کلو، که راجع به این مطلب است.